گیل مرد کوچک اندام می آید کنار همسرش می نشیند خجلت زده و گیلکی می گوید من هنوز زنده و باز زانو زده در برابر تو آن گفتگوی بلند را که میخواستی آغاز کنیم آماده آغاز کردنم زانو زده در برابر تو گیل مرد دلاور من زندگی من را نگاه کن سخت آشفته است. قدری غم زده و خالی از رنگ. انگار که آواره‌ایم اما در آوارگی راه کوتاهی را میرویم و باز می‌گردیم. آوارگان بزرگی نیستیم. از آن خلوص که در سوالان داشتیم دیگر اثری نمانده است. نگاه کن، نگاه کن و بخواه که همه چیز را آنگونه که هست ببینی. انگار وا داده ایم و این خوب نیست تو همان روز که از سکوت عاشقانه می گفتی نشانم دادی که درد را دریافته ای تکرار و شباهت و ماندگی. درمان را اما نمی دانی. نگاه کن و بخوا همه چیز را انگونه که هست ببینی گیل مرد بیا یک بار دیگر آستینهایت را بالا بزن شباهت را از شبها و روزهایمان بگیر. شاید باز باید به خاطرت بیاورم که انقلاب شد، که دیگر در این روزها و شبها دغدغه‌ای نیست. یک پای تو کمی کوتاه میماند برای ابد، اما این کوتاهی از بزرگی روح تو هیچ نمیکاهد و از ایمان به نوسازی زندگی و از شور ما برای آنکه شباهت را از زندگی بگیریم. خاطره را از عشق کاری کن مرد کاری کن راست میگفتند گفتند بشخاب ها لب پر شد مرده ها رنگ. کفش هایشان واکس نداشت، یا دست کم برق نمیزد، خردگی، سایدگی، پوستکن شدگی، قبار روی همه چیز نشسته بود، قباری که با دستمال قبار روب نمیرفت، خود دستمال هم کدر شده بود، چرک مرد، عشق آرام آرام در روند تبدیل بود، تبدیل شدن به محبت، سمیمیت، مهربانی، همدردی عشق در روند تبدیل شدن به چیزی بود سرد، جامد، کوتاه، محدود، کهنه عشق در جریان تبدیل بود و هر تبدیلی عشق را باطل می کند چیزی حیرت انگیز در گوشه و کنار خانهشان می رویید کاشی های و حمام اصلا جلا نداشت گلدانها را جرم گرفته بود هاشی شیشه های پنجره ها لک بود آنها میدویدند، خسته. خسته خستگی روی فرش کهنشان نشسته بود اشیا و ابزارها جای معینی نداشتند و یا به جایی که داشتند عادت کرده بودند و جا انداخته بودند دایره مربع مستطیل قرارگاه اشیاء و ابزارها از تهاجم روزگار انگار که بر کنار مانده بود. اشیاء را که بر می داشتی دورنگی خود نمایی میکرد اما هیچ چیز به راستی از تهاجم زمان بر کنار نمانده بود. تمام چیزهایی که نباید صدا میکردند صدادار شده بودند سندلیهای راحتی میز کوچک کار در یخچال، درهای اتاقها، روغن نخوردگی، پیچهای لق، جای انگشتها اینجا و آنجا خب چرا پاک نمی کنیم؟ می نمی شود نوع پاک کردن فرق کرده، کاهلان بدون قید بدون اعتقاد به جلا، ضرورت جلا، چیزی در حال فرو رفتن بود قروب، غرق شدن، عشق نجات دادن قریغی است که دیگر هیچ کس به نجاتش امیدی ندارد. عشق رجعت به آغاز آغاز است، به شروع، به همان لبخند، همان نگاه، همان تعم، اما نخاطر آنها، خود آنها، با نکه یک ترکه نیم سوخته سیب زمینی های برشته را از زیر خاکسترها بیرون میکشیم پوسته های سوخته خوشک شده را به جو قرق نمک است کمی هم ترخ تمام حسنش به همان ترخیست هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم این است غیر منصفانه من باید عاشق تو باشم در حد ممکن عشق و آرزومند آن باشم که مرا بخوای هرقدر که میخوای انبار کوچک مملو از بی مصرف‌ها و به درد نخورها مملو از چیزهایی که همیشه گفته ایم یک روز احتمال دارد به کار بیاید دیگر از اینها پیدا نمی شود. برای بچه های بعدی به درد سفر میخورد، چمدانهایی که چفت و بست ها شکسته گلدان ترک خوردهی که یادگار اموجان است رو اولی پوتین های دومی خدای من همه را باید دور ریخت انبار را باید خالی خالی کرد همین هاست که زندگی را از شکل میاندازد همین هاست که زندگی را کهنه میکند موریان خورده بیت زده کپک زده در هم شکسته بی سر و ته رنگ و رو رفته ما فقط کهنگی ها را پسانداز میکنیم ما پاسداران از شکل ها هستیم جای عشق کجاست فریاد نزن به زمزمه بگو جای عشق کجاست لابلای این همه آشغال چطور باید پی عشق بگردم؟ بیان آنکه به خاطر برخورد کنم؟ خاطر مثل همین پتوی گوشه سوخته آن چادر شب وصل پین و یادداشت‌های دوران دبیرستان است. دورشان بریز دورشان بریز قبار، قبار مرده ماسیده، قبار نافظ در اشیاء.